تیرانداز و تارکین خان در زمانهای خیلی قدیم در سرزمینی که تارکین خان فرمان روایی میکرد یه جوون تیرانداز وجود داشت این جوون در یکی از روزها به قصد شکار کنار دریاچه ای رفت ناگهان با سه تا قو که سرشون زرد بود روبرو شد وقتی قوها را دید بین نیزارهای کنار دریاچه مخفی شد و به کاراشون خیره شد قوها کنار دریاچه فرود اومدند و پرهای خودشون رو کندند و به شکل سه دختر بسیار زیبا اومدند و به قصد آبتنی رفتند توی دریاچه تیرانداز نزدیک شد و پرهای یکی از گوها رو برداشت و دوباره بین نیزارها مخفی شد وقتی اون سه دختر از آب در اومدند، با کمال تعجب با دو پر روبرو شدند. پرهای دختر سومو ندیدند. هرچی گشتند نتونستند پرور پیدا کنند. اون دخترم خیلی ناراحت بود. اون دوتا به پرواز در اومدن و برای پیدا کردن پر خواهرشون همه جای ساحل رو از بالا نگاه کردند. اما هرچی گشتند نتیجه ای نداد. از پر خبری نبود. ناچار به پرواز در اومدن و به خواهرشون گفتند سرنوشت تو اینطوری بوده. دختر جوان تنها موند و در طول ساحل میدوید، دنبال پرش میگشت و اشک میریخت و میگفت اگه کسی پر منو پیدا کنه و اونو به من بده، هرچی بخواد انجام میدم. اگه زشت باشه زیباش میکنم، اگه فقیر باشه پولدارش میکنم. خلاص هر آرزوی داشته باشه انجام میدم تو رو خدا پرمو به من برگردونید او همینطور میدوید و اشک میریخت ناگهان تیرانداز از بین نیزارها در اومد و بهش گفت دختر خانم ناراحت نباش بیا اینجا پرای تو پیش منه دختر جوان پرهای خودش رو در دست مرد جوان دید خیلی خوشحال شد و با شرم و حیا بهش نزدیک شد گفت برادر جان شما کار بسیار خوبی انجام دادی و برای منو پیدا کردی حالا اونا رو به من بده تا بتن تن کنم در عوض قول میدم هر چه بخوای برات انجام بدم و آرزوهات رو برآورده کنم تیرانداز گفت چی میتونی به من بدی من جستو آرزویی ندارم آیا حاضری با من ازدواج کنی دختر زیبا تیرانداز رو که جوان شایسته و برازنده ای تشخیص داد با خجالت نگاهش کرد و گفت بسیار خوب حاضرم تیرانداز دستش رو گرفت و او رو به اردوگاه خودش برد و با او عروسی کرد اون وقت این زن و شوهر در چادر تیرانداز زندگی تازه خودشون رو شروع کردند اون دو نفر طوری همدیگر رو دوست داشتند که حتی لحظه ای از نگاه کردن به همدیگه غفلت نمی و نمی تونستن حتی یه لحظه همدیگر رو ترک کنند بعد از مدتی خانه تارکین شنید که تیراندازش با دختر بسیار زیبایی عروسی کرده. خانه کنجکاو میخواست بدون این موضوع تا چه حد سخت داره. یه روز رفت به چادر تیرانداز و متوجه شد که بهش راست گفتن و زن تیرانداز مثل خورشید از زیبایی میدرخشه و شخص از نگاهش سیر نمیشه. اون دختر با هیچ یک از زنهای زیبای روی زمین قابل مقایسه نبود. تارکین خان بعد از تحسین به قصر خودش برگشت و تمام مشاوران و اطرافیان خودش رو خواست و بهشون غذا و آشامیدنی های لذیذ داد. بعد گفت: آقایون، همه شما را مثل جان خودم دوست دارم، ولی انتظار دارم هر قدر میتونید منو راهنمایی و کمک کنید. مشاورا جواب دادن: هرچه بخواید با جون دل انجام میدیم. تارکین به اونا گفت یکی از تیراندازان من زن زیبایی داره که من در عمر خودم با چنین زن زیبایی روبرو نشدم و فکرم نمی کنم در هیچ جای دیگه دنیا چنین زن زیبایی وجود داشته باشه چون به عقیده من زیبایی دیگران در برابر او هیچه. تارکین خان از وقار و از اندام زن جوان از صدا، و از زیبایی موها و چشمهای اون زن صحبت کرد و گفت به این ترتیب ملاحظه میکنید که یک تیرانداز بیچیز با چه زن زیبایی ازدواج کرده حالا شما باید منو راهنمایی کنید که چه کار باید بکنم و چه راهی رو انتخاب کنم که این زن زیبا مال من باشه بعضی از مشاورا گفتند گفتن باید اونو بدوزین بدازین و میان قصر مخفی کنین اده دیگرشون گفتن باید تیرانداز رو بکشین و زنش رو ازش جدا کنیم. ادهی هم گفتن تیرانداز رو نباید کشت بلکه باید او رو به سرزمین های دوردست فرستاد تا سختی ببینه و از بین بره و نتونه دیگه با زن خودش روبرو بشه. در میان مشاوران پیرمردی بود که آخر از همه از جا برخاست و گفت تمام این راهنمایی ها بی ارزشه. اگه این زن زیبا رو بدزدید و بین قصر مخفی کنید. دیر یا زود مردم متوجه میشن کشتن تیرانداز هم خالی از خطر نیست ممکنه مردم از این کار ناراحت بشن و با ما دشمنی کنند از طرفی تیرانداز رو نمیشه به جای دور فرستاد چون ممکنه دوباره برگرده و زنش رو با خودش ببره فقط باید در این کار یه هیله به کار ببریم تارکین ازش پرسید: خب حالا پیشنهاد تو چیه؟ پیرمرد گفت: من شنیدم. در اون حدودی که آفتاب غروب میکنه در کنار رودخونه ببر مادهی با بچه هاش زندگی میکنه حتی میگن این ببر مثل حیوانات درنده دیگه فوقلاده خونخوار و بیرحمه باید تیرانداز رو بفرستیم اونجا و ازش بخوایم تا برای خانه ما شیر اون ماده ببر رو حاضر کنه بدون شک زنده بر نمیگرده و ببر او رو خواهد دارید و از بین خواهد برد وقتی تیرانداز مرد، اون وقت به دست آوردن زن زیباش سهل و ساده است. بنابراین این تیرانداز جرأت اونو نداره از دستور خان سرپیچی کنه. راهنمایی این شخص هیله‌گر خان و اطرافیانش رو خوشحال کرد. همه گفتند بسیار فکر خوبیه. بلافاصله خان تظاهر به بیماری کرد و دستور داد تا تیرانداز را حاضر کنند. موقعی که تیرانداز حاضر شد، خان در حالی که ناله می‌کرد و گریه میکرد گفت: ببین به چه مرز خطرناکی دچار شدم؟ تنها دارویی که میتونه منو از مرگ نجات بده در همون جایی که آفتاب غروب میکنه. در اونجا کنار رودخانه وسیع یه ماده ببر بزرگ با بچه هاش زندگی میکنه. گفتن که شیر او میتونه قدرت و سلامتی رو به من برگردونه. عجلی کن به اونجا برو و شیر این ماده ببر رو برای من بیار. خان تارکین پس از این کلمات با ناراحتی بیشتری شروع کرد به نالیدن و گریه کردن تیرانداز رفت رفت و داخل چادرش شد و خودش رو برای رفتن محیا کرد بهترین لباسهاش رو پوشید و بهترین ابزارهای جنگیش رو با خودش برداشت زنش پرسید با این بس کجا میری؟ تیرانداز جواب داد خان سخت مریضه تنها چیزی که میتونه اون رو نجات بده شیر ببر مادهی که در ساحل شیبدار رودخانه وسیع زندگی میکنه همون جایی که آفتاب غروب میکنه. خان به من دستور داده اونجا برم البته رفتن به اونجا کار ساده ای نیست از طرفی نمیتونم دستورش رو رد کنم. به ناچار باید حرکت کنم. زن تیرانداز متوجه شد که خان شوهرش رو به خاطر آوردن شیر ببر ماده به اونجا نمیفرسته. بلکه مطمئن شد نقشه و خیال دیگه ای در سرش پر برونده. اون وقت دستمال حریر زردی به شوهرش داد و گفت این دستمال رو با خودت ببر او تو رو از خطر حفظ میکنه. وقتی ببر بهت حمله کرد این دستمال رو بهش نشون بده که فورا آروم بشه. اون وقت هرچه بخوای بهت میده. آخه این ببر قبلا پیش ما زندگی می کرد. تیرانداز دستمال را برداشت، اسبش رو زین کرد و با زن جوان خودش خودحافظی کرد و به همان حدودی که همیشه آفتاب غروب میکرد کرد روانه شد. با اسبش از بالای چادرها جست میزد و از روی تپه ها و درده ها و دریاچه های شور و شنهای روان میگذشت. روزها غذا نمیخورد شبها هم نمی خوابید. حساب روزها و شبها از دستش در رفته بود، و کوشید که دستور خان رو به بهترین نحو انجام بده و زودتر به منزلش برگرده. مدتی چهار نعل حرکت کرد. بالاخره به ساحل شیبدار رودخانی بزرگ که مثل دریا به نظر می‌رسید نزدیک شد. همون جایی که ببر بزرگ با بچه هاش زندگی می‌کردند. ببر قبلاً می‌دونست که تیرانداز داره به طرفش حرکت می‌کنه. بنابراین با صدای بلندی غرید. وقتی او رو دید، خودش رو به روی اون انداخت تا او رو قطع قطع کنه. اما تیرانداز فورا دستمال زر رو که زنش بهش داده بود در آورد و تکون داد. ببر از حمله خودش دست کشید و ازش پرسید ای سوار دلیر، بگو ببینم این دستمال حریر رو از کجا آوردی؟ تیرانداز جواب داد، این دستمال رو زنم به من داده. اون وقت ببر ازش پرسید، حالا بگو ببینم برای چی اینجا اومدی تیرانداز جواب داد، خانه ما به شدت مریضه، به من دستور داده تا شیر تو رو براش ببرم. ببر گفت، حالا که اینطوره از اسبت پیاده شو، قمقمه چرمی خودت رو از شیر من پر کن. تیرانداز از اسب پیاده شد، قمقمهش را آورد و پر از شیر کرد و اونو محکم به زین اسبش بست و از ببر خداحافظی و تشکر کرد و از اونجا حرکت کرد. ببر هم باش خداحافظی کرد و گفت، اینچه علا که حال مریضت خوب بشه. به طرف منزلت برگرد. خوش باشی. به طرف بچه هاش رو کرد و تیرانداز هم سوار اسبش شد و به طرف سرزمین خودش به راه افتاد. وقتی به شهر رسید بلا فاصله پر از شیر رو پیش خان برد و خان همچون نمیتونست کار دیگه ای بکنه قمقومه رو برداشت و شیر رو سر کشید و گفت خیلی خوب حالا سلامتی خودم رو به دست آوردم. خان تیرانداز رو مرخص کرد و دوباره مشاوراش رو خواست و بهشون گفت مشاور پیر ما برای از بین بردن تیرانداز هیلهای به کار برد ولی هیچ نتیجه ای نداد. ما فکر می کردیم که ببر ماده او رو قطع قطعه می ولی این کار انجام نشد و او صحیح و سالم به منزلش برگشت و صدم و آزاری بهش نرسید. حالا به نظر شما چه کار باید به عهده او بگذاریم تا از بین بره و هیچ وقت دیگه برنگرده؟ مشاورا به فکر فرو رفتند، خیلی هم فکر کردند ولی نتونستند حیله ای رو که بشه بهش تیرانداز را از بین برد، اظهار کنند. بالاخره مرد دیگه ای از جاش بلند شد و گفت این تیرانداز رو به جایی فرستاده بودیم که از بین بره ولی نرفت. پس وسیله برای از بین بردن او در دسترس نیست. فقط یه راه برامون باقی میمونه که باید انجام بدیم. ما باید ولگردای شهر رو جمع کنیم و بهشون غذا و مشروب مفصلی بدیم تا کاملا مست بشن. وقتی مست شدن ازشون بخوایم که ما رو برای از بین بردن تیرانداز راهنمایی کند. همه اونها گفتند پیشنهاد خوبیه. همین کار رو میکنیم. در یکی از روزها خان و مشاورانش ولگردای شهر رو بدون اطلاع کسی جمع کردند، غذا و مشروب زیادی بهشون دادند، اون وقت که همشون مست شدند ازشون پرسیدند آیا در بین شما کسی هست که بشه خانه ما رو کمک کنه که او از شر تیراندازش خلاص بشه؟ اگر بین شما کسی برای این کار مناسب نیست، خودتون میتونید شخص دیگه ای پیدا کنید و اونو وادار کنید تا این تیرانداز رو با کمک هیله و تذویر از بین ببره. به این ترتیب خان و مشاورا مدتی باهاشون صحبت کردن و منتظر بودن ببینن دزدا و ولگردا چه جوابی بهشون میدن. اما همه اونا خاموش موندند و کوچکترین عقیده ای اظهار نکردند. دوباره ازشون سوال شد. ولی اونا باز هم سکوت کردند. ناگهان یکی از اونا که یه چشمش کور بود از جا بلند شد و پیراهنش رو باز کرد و به سیناش مشت زد و فریاد کشید: من میدونم، من میدونم. خان در حالی که سکوت کرده بود و خوشحال بود حرفش رو گوش داد و گفت: «زود باش بگو ببینم چی و میدونی؟ اون فرد نابینا گفت: باید تیرانداز رو به یه سرزمین اسرارآمیز بفرستی و ازش بخوای که یه چیز اسرارآمیز با خودش بیاره ناچار او هم در این سرزمین اسرارآمیز سرگردان میشه و دنبال چیز اسرارآمیزی که نه شکلی و نه جایی داره میگرده و مسلماً تا آخر عمرش هم پیدا نمیکنه و جرئتم نداره دست خالی به شهر برگرده خانه تارکین و مشاوراش از حیله اون مرد کور خوشحال شدن و پاداش مفصلی بهش دادن و اونا رو مرخص کردند. خان باز هم خودش رو به بیماری زد و دستور داد تا تیرانداز رو حاضر کنند و موقعی که تیرانداز اومد خان در حالی که آه ناله سر میداد گفت: بازم به تب شدیدی دچار شدم. برای درمان من باید چیزی که نه شکلی و نه جایی داره و در سرزمین اسرارآمیزی پیدا میشه تهیه کنی. هیچکس کس غیر از تو نمیتونه این تقاضای منو برآورده کنه. فورا راه بیفت و این شی عجیب رو برای من حاضر کن. تیرانداز پرسید: آخه کجا باید برم؟ چه کار باید بکنم؟ چه چیزی رو باید برای شما فراهم کنم؟ خانه تارکین جواب داد: من نمیدونم، فقط میدونم که این تو هستی که میتونی این کار را انجام بدی و این شیء رو برام فراهم کنی و منو از مرگ نجات بدی. در غیر این صورت من میمیرم و اون وقت دوباره آه ناله کرد. تیرانداز به چادرش برگشت. و در خصوص معموریتش فکر میکرد. چند شبانه روز ناراحت بود. روزها بالای تپه ها میرفت و با خودش اندیشه میکرد و شبها هم خواب آرام نداشت و توی رخت خوابش میزد. بالاخره فکرش به جایی نرسید و چون نمیخواست زنش ناراحت کنه چیزی بهش نگفت. روز سوم اسبشو رو زین کرد و تصمیم گرفت از جاده مقابل خونش حرکت کنه و فکر کرد شاید از این راه بتونم به سرزمین اسرارامیز برسم روی اسبش پرید با زنش خداحافظی کرد زنش پرسید کجا میری؟ تیرانداز جواب داد خان باز هم مریض شده طبق دستورش باید برم به سرزمین اسرارامیز و در اونجا چیزی رو که نه شکل و نه جایی داره به دست بیارم زن وقتی حرفش رو شنید گفت با اسب نمیشه به این سرزمین مسافرت کنی بهتر پیاده بری این گوی عبری شمی رو بردار و سه قدم جلو بنداز. هر جا که گوی حرکت کرد تو باید دنبالش حرکت کنی و بری. اینم یه شونه طلایی، صبحها باید موهای خودتو با این شونه کنی. تیرانداز جوان با زن خودش حافظی کرد. گوی رو سه قدم جلو انداخت. بلافاصله فاصله گوی به حرکت در اومد و تیرانداز هم اونو تعقیب کرد و در طول راه، از میان کبیرهای شورزار و شنهای روان و تپههای بلند، دنبال گوی حرکت میکرد و در درههای عمیق سرازیر می شد و از کنار دریاچه ها و نیزارها میگذشت. روزها هیچ جا توقف نکرد و شبها هم خواب آرام نداشت. چقدر از هفته ها و ماهها سپری شد، ولی ترانداس مراقب گوی بود و همه جا او را تعقیب میکرد. کرد. گوی در جنگل پردرخت و تاریکی وارد شد. تیرانداز هم بدون استراحت جنگل را طی کرد و به دنبال گوی که مرتبا در حال غلتیدن بود حرکت کرد تا اینکه گوی در میان جنگل در چادر کوچک نمدی وارد شد و بلافاصله از نظر ناپدید شد مثل اینکه آب شده بود و توی زمین فرو رفته بود تیرانداز با خودش گفت حالا کار کنم؟ پس باید برم میون چادر یک طرف چادر رو بالا زد و داخل شد زن زیبای لاغرندامی به ملاقاتش اومد و ازش پرسید کی هستی از کجا میای و کجا میری مرد جوان جواب داد من تیرانداز خان هستم و خودمم نمیدونم کجا باید برم زن غذا و نوشیدنی بهش داد و اونو به استراحت و به محض اینکه آفتاب غروب کرد تیرانداز به خواب عمیقی فرو رفت صبح فردا از خواب برخاست، صورتش رو شست و با همون شونه ی تلایی که زنش داده بود سرش رو شونه زد صاحب شونه رو نگاه کرد و پرسید این شونه ی تلایی رو از کجا آوردی؟ تیرنداز جواب داد زنم اونو به من داده اون خانم کوچولو خوشحال شد و گفت پس تو فامیل بسیار نزدیک ما هستی خواهرم زن توه چرا دیشب این موضوع رو به من نگفتی؟ دوباره به تیرانداز غذا و آشامیدنی لذیذ داد و بهش گفت حالا پس از تی کردن این همه راه سخت و مشکل کمی استراحت کن و سه روز اینجا بمون. تیرانداز سه روز و سه شب در اونجا استراحت کرد. بالاخره زن جوان بهش گفت حالا برام تعریف کن کجا میری و برای چه منظوری حرکت کردی اما نباید چیزی رو از من پنهون کنی. بعد تیرانداز دلیل مسافرت خودش رو براش تعریف کرد و گفت که از کجا میاد و به کجا میره و تصمیمش چیه زن جوان داستانش رو گوش داد سرش رو زیر انداخت و گفت من نمیدونم این سرزمین اسرارآمیز کجاست اما شاید بتونم از دیگران کمک بگیرم و سوال کنم که محلش رو به من نشون بدن بلافاصله یه شیپور طلایی برداشت و از چادر خارج شد و اونو با قدرت تمام به صدا در آورد از اون شیپور صد و هشت صدای غمناک و شست و دو صدای شادیاور خارج شد بلافاصله تمام حیوانات خشکی و هوایی از هر نمونه جمع شدند چه حیوانایی که می پریدند, چه حیوانایی که می خزیدند حتی حیوانایی وحشی جلگزارها و جنگل و پرندههایی که توی آسمون می پریدند کرم که زیر زمین زندگی می کردند. خلاصه همه اونجا حاضر شدند و به شکل دایره اطراف صاحب چادر جمع شدند. زن زیبا به اونا گفت: حیوونا و پرنده ها شما که از هر طرف در حال حرکتید و همه جا پرواز می کنید و به جاهای دور میرید. آیا بین شما حیوونی هست که بدونه چیزی که نه جا و نه شکلی داره و در کشور اسرارآمیزی به دست میاد کجاست؟ اگه بین شما حیوانی اطلاع داره قدم جلو بذاره و بگه بگه که من اینو میدونم اما اونایی هم که نمیدونن بگن ما نمیدونیم و فوراً حرکت کنند پرنده ها گفتند ما نمیدونیم بلافاصله پرواز کردند و رفتند حیوانات خشکی هم گفتند ما هم نمیدونیم اونا هم به الفزار و جنگل های خودشون برگشتند کرمها و حشرات گفتند ما هم نمیدونیم و بلافاصله از اونجا دور شدند. بعد دختر جوان شیپور طلایی خودش رو در دستش گرفت و در اون دمید. صد و هشت صدای غمانگیز و شست و دو صدای شادیاور به صدا در آورد. بلافاصله اطرافش حیواناتی که توی آب زندگی می کردن جمع شدند. ماهی ها، لاک پشت ها، ها، خرچنگ ها. صاحب چادر از اون موجودات دریایی پرسید خزندگان و ماهی ها. شما در همه جا حرکت می کنید و در همه جای آبهای دوردست شنا می کنید. همه چیزو می حالا جواب بدین. آیا بین شما حیبونی هست که بدونه چطور باید در یه سرزمین اسرارآمیزی رفت و در اونجا چیزی که نه شکل داره نه جا داره به آورد؟ اگه بین شما کسیه که اینو می قدم جلو بذاره و بگه من اونو می دونم و اوناییم که نمی بگن ما نمی و برگردن به خونه های خودشون ماهی ها، لاک پشت ها، ها، ها و خرچنگ ها فریاد زدند. ما نمی‌دونیم، نمی‌دونیم. و ناچار به طرف برکه ها و رودخونه ها و باطلاق های خودشون برگشتند فقط یه خرچنگ بزرگ باقی موند گاهی به طرف آب و گاهی به طرف چادر حرکت می‌کرد. زن جوان دید که خرچنگ خیلی نراحته ازش پرسید تو ملکه خرچنگ ها هستی؟ خرچنگ جواب داد: بله. خب چی میدونی؟ چی شنیدی؟ چی میخای بگی؟ مگه از این سرزمین اسرارآمیز چیزی شنیدی که میخای بگی؟ خرچنگ گفت: ممکنه حرفمو باور نکنی. صاحب چادر گفت: عیب نداره، هرچی هست بگو. خرچنگ گفت: اگه کسی از اینجا حرکت کنه و به طرف جنوب بره، بعد از یک ماه راه رفتن به دریای بزرگی میرسه اگه این شخص نتونه با کشتی این دریا رو طی کنه بعد از یک ماه میتونه به طرف دریای دیگه برسه اون وقت با جاده بزرگی روبرو چه این جاده به سمت جنوب میره کسی که این جاده رو طی کنه بعد از یک ماه به یه جنگل بزرگ که در سمت شرق قرار داره میرسه کنار جنگل کوره راهیه که اثر چرخهای گاری درش به چشم میخوره اگه این راه رو طی کنه به یه جنگل میرسه که جاده در اونجا قطع میشه بیشتر از این چیزی نمیدونم خرچنگ حرف خودش رو در اینجا تمام کرد و به طرف برکه برگشت زن جوان از تیرانداز پرسید حتما اون که ملکه خرچنگ ها گفت چنیدی تیرانداز جواب داد من تمام حرفاش رو به دقت گوش کردم زن جوان گفت بسیار خوب پس راه بیفت شاید کشور هم همونجا باشه غیر از خرچنگ هم حیوان دیگه ای نیست که بشه چیزی ازش پرسید. باید تنها خودت حرکت کنی. بعد به تیرانداز غذا و آزوقه داد. تیرانداز از صاحب چادر خود حافظی کرد و راه افتاد. شبها و روزها بدون توقف راه رفت. حدود یک ماه در حرکت بود و به دریای بزرگ رسید. به دریا نگاه کرد و متوجه شد که بدون وسیله نمیتونه روی اون حرکت کنه. در حالی که ساحل دریا را طی کرد، به طرف مغرب رو کرد. یک ماه تمام گذشت. به قسمت دیگهی دریا رسید. در اونجا با جاده ی بزرگی روبرو شد که باز هم یک ماه توی اون راه رفت. و در شرق جاده، جنگل بزرگ و پردرختی را دید. بدون توقف، به طرف جنگل روانه شد و به کور راهی رسید که عراب رو بود. سه روز و سه شب راه رفت. و بعد دوباره به یه جنگل پر درخت رسید. درختان بزرگ و بلند جنگل آسمان و روشنایی روز رو از نظر مخفی می داشت. به هیچ وجه خورشید به چشم نمی و جاده یا کوره راهی که بشه ازش عبور کرد به نظر نمی اومد. توقف کرد و با خودش فکر کرد چه کار باید بکنم؟ چون مقدار زیادی راه رفته بود نمی‌تونست به عقب برگرده. اطرافش رو نگاه کرد که ناگهان با چاه عمیقی روبرو شد. تیرانداز رفت داخل چاه و با شک و تردید درش فرو رفت. در ته چاه به زمین وسیع رسید و در وسط زمین با یه خونه روبرو شد. تیرانداز داخل خونه شد. اطرافش رو نگاه کرد ولی کسی رو اونجا ندید. گوش داد. چیزی هم نشنید. ولی مسلم بود که کسی تو اون خونه زندگی میکنه. تیرانداز با خودش فکر کرد کی اینجا زندگی میکنه؟ باید مواظب باشم تا کسی نتونه منو غافل گیر کنه؟ بعد شکاف بزرگی رو بین اتاق دید، داخلش شد و بر اثر خستگی فوراً به خواب رفت. در میان خواب صدای گاری به گوشش خورد، صدای چرخهای گاری شدید بود، جوری که چون این صدایی از یه گاری معمولی به وجود نمیاد. تیرانداز سعی میکرد خودش رو بیشتر مخفی کنه و صدایی ایجاد نکنه که کسی رو متوجه خودش کنه. ولی خیلی هم ناراحت بود و فکر میکرد بالاخره چه اتفاقی میفته. گاری کنار خونه توقف کرد. مردی با قیافه وحشتناک داخل خونه شد. لباس های عجیبی به تنش بود. سلاح های زیادی به کمرش بسته بود. مرد سلاحها و لباس رو درآورد و به یه میخا کرد. سپس یه جایی نشست و پاهاش رو روی هم گذاشت و صدا زد آهای مرزا چیزی بده بخورم به محض اینکه این, این جمله را ادا کرد سفره بسیار بزرگی در مقابلش گسترده شد که سر و سر اون پر از غذا و نوشیدنی های لذیذ و انواع میوه‌های خوشمزه بود مرد هر قدر میتونست غذا و نوشیدنی خورد و آشامید بعد گفت حالا مرزا سفره رو جمع کن بلا سفره صفره بشقاب ها،, ها و کاسه ها ناپدید شد مرد لباسش رو تنش کرد و سلاحهای خودش رو به کمرش آویزون کرد و از منزل زیرزمینی خودش خارج شد چرخهای گاری چندین بار صدا کرد و نشون می داد که از اونجا دور شده تیرانداز از مخفیگاه خودش خارج شد اطرافش رو نگاه کرد کسی رو ندید تعجب کرد و با خودش فکر کرد این مرد کی بود؟ کی بهش غذا داد؟ به علافه غذای زیاد اومده چی شد؟ پس منم سعی کنم هر چی رو که او انجام داده انجام بدم. تیرانداز سلاحها و لباسهاش رو درآورد و اونا رو همونطور که مرد ناشناس به میخ آویزون کرده بود آویخت. روی فرش نمدی نشست پاهاش رو روی هم گذاشت و گفت آهای مرزا چیزی بده بخورم. بلافاصله در مقابلش سفره زردی که روش انواع غذاها و نوشیدنی ها بود فراهم شد ماهی های سرخ شده لذیذ میوه های عالی و درجه یک تیرانداز با عجل تمام غذاها و نوشیدنی ها رو با علاقه خورد و سیر شد بعد گفت مرزا کجا هستی با من بشین هرقدر میتونی تو هم بخور بلافاصله مورزا ظاهر شد کنار تیرانداز نشست و به خوردن پرداخت. موقعی که سیر شد، رو به تیرانداز کرد و گفت: حدود سی ساله که من این مرد جوان رو که لحظه‌ای پیش اینجا دیدی، غذا دادم. اما یه بارم نشده که منو دعوت کنه. اما تو گفتی: "مرزا بشین و با من غذا بخور. من با تو بهتر میتونم زندگی کنم. خواهش میکنم منو همراه خودت ببر." تیرانداز جواب داد: کاملا موافقم." فکر میکنم اون چیزی رو که دنبالش میگشتم تو باشی و به هیچ فاش انتظار نداشتم باهات روبرو شم. مورزا گفت: من مال تو خواهم بود و همه جا دنبالت میکنم تیرانداز جواب داد: بسیار خوب، همیشه با هم خواهیم بود و با هم حرکت خواهیم کرد. اونها خارج شدند و به افتادند و مرزا در حالی که دیده نمیشد کنار تیرانداز در حال حرکت بود. مدتی راه رفتند. ناگهان صدای چرخهای گاری به گوش رسید. مرزا گفت این ارباب منه که داره با گاری حرکت میکنه. بدون شک گرسنه است. الان من صدا میزنه ولی من جوابشو نمیدم. عصر که شد تیرانداز به نقطه ای از جنگل رسید که در اونجا چادر نمدی پاره ای جلب نظر میکرد. تیرانداز داخل چادر شد و زاهدی رو دید که مشغول عبادته و به هیچ کس اعتناعی نداره. تیرانداز گفت زاهد پیر، تقاضای ازت دارم، اجازه میدی امشب توی چادر شما باشم؟ زاهد عبادت خودش رو نا تموم گذاشت و گفت تا کنون کسی اینجا نیمده، از کجا میای و کجا خیال داری بری؟ تیرانداز گفت بنابه دستور خان من به سرزمین های دوردستی رفتم و حالا هم دارم به شهر خودم برمیگردم زاهد گفت البته در اینجا میتونی بخوابی ولی من نمیتونم غذایی برات تهیه کنم چون هیچ در اختیار ندارم. آش و چای و چیزای دیگه اینجا وجود نداره. حتی سپایی هم توی چادر نیست تا بتونم غذاها رو روش گرم کنم. تیرندوز گفت: من هیچ چیز احتیاج ندارم. تنها اگه اجازه بدی میخوام امشب پیش شما بمونم. زاهد گفت: خیلی خوب، اشکالی نداره. پیرمرد به تیرانداز اجازه داد که شب را توی چادرش بخوابه. بعد دوباره به عبادت مشغول شد. و قبل از خواب غذای خودش رو برداشت و مشغول خوردن شد. غذای او تمشک و میوه جنگلی بود که در بین تخت سنگها و بیشهای اون حدود به دست می اومد. زاهد روی زمین نشست و غذاش رو خورد. بعد به تیرانداز گفت میبینی که با چیزی خودم را دارم سیر می کنم؟ آیا حاضری با من غذا بخوری؟ به علاوه از همین غذای ناچیز هم چیزی نموده تا تو بتونی بخوری و سیر بشی. متاسفانه وقت ندارم که برم تمشک و میوه برات تهیه کنم چون در تمام مدت مشغول عبادت هستم. تیرانداز بدون اینکه ناراحت بشه گفت خودت بخور. من هم غذا دارم. الان میخورم. آهای مورزا کمی غذا به من بده. به محض اینکه این کلمه از دهنش خارج شد، سفره زردی پوشیده از غذاها و نوشیدنی‌های مختلف که هر شخصی آرزو می‌کرد بخوره، براش فراهم شد. تیرانداز مقابل سفره نشست و گفت: "آهای زاهد، بیا بنشین و با من غذا بخور." پیرمرد تعجب کرد، کنار تیرانداز نشست و ضمن اینکه از غذاها تعریف می‌کرد، به خوردن پرداخت. مرد جوان مورزا رو هم صدا زد و او رو به خوردن و نوشیدن دعوت کرد. موقعی که سیر شدهاند تیرانداز گفت: آهای مرزا همه اینا رو جمع کن. سفره و تمام چیزهایی که روش قرار داشت بلافاصله ناپدید شد. اما این غذاهای لذیذ مورد پسند زاهد قرار گرفت و از تیرانداز پرسید: مرد جوان این مورزا رو به من بده. تیرانداز جواب داد: نمیتونم چنین کاری بکنم. خودم بهش احتیاج دارم. تمام شب زاهد به او پیشنهاد می کرد و میگفت مرد جوان مرزا رو به من بده به جاش یه چیز شگفت‌انگیز دیگه بهت میدم تیرانداز گفت چی به من میدی زاهد گفت همین حالا بهت نشون میدم بعد دستمال ابریشمی خودش رو برداشت و به تیرانداز گفت تا باهاش حرکت کنه موقعی که از شادور خارج شدند پیرمرد دستمالش رو تکون داد و فریاد زد قصر ظاهر شو در این موقع قصر زیبایی که بالایمون به ابرهای آسمون می رسید در برابر هر دو نفر ظاهر شد. این قصر از هر لحاظ زیبا و جالب به نظر میرسید. با طلا و نقره زینت داده شده بود و پر از سنگ‌های قیمتی بود. الماس، قطعات مرجان، فیروزه در همه جا سنگ‌های قیمتی به چشم می خورد. اما داخل قصر زیبایی خیره کننده تری داشت. به طوری که با شکوه ترین قصر خانها و ثروتمندهای دیگه هم از چنین زیبایی برخوردار نبود. زاهد این قصر رو به تیرانداز نشون داد و گفت: تو هنوز جوونی و این قصر ممکنه برات مفید بشه ولی من به غذاهای لذیذ احتیاج دارم. این دستمال را از من بگیر و بهجاش مرزا و سفرهی زرد خودت رو به من بده. با اون که زاهد خیلی اصرار کرد ولی تیرانداز رضایت نداد. تیرانداز گفت: مرزا رو نمیتونم از دست بدم. در این هنگام مورزا آهسته به تیرانداز گفت: زود باش این معامله رو انجام بده. قصر مال تو میشه. منم مال تو هستم و هرگز تو را ترک نمی کنم. این معامله رو انجام بده. تیرانداز به حرفهای مورزا اعتماد کرد و معامله رو انجام داد. زاهد دستمالش رو تکون داد و گفت: دور شو. در این هنگام قصر مفقود شد. تیرانداز دستمال زاهد را گرفت و گفت: بسیار خوب مرزا رو بهت میدم بعد از ظاهد خداحافظی کرد و به افتاد در میان راه با خودش گفت کار درستی نکردم بی جهت این معامله رو با زاهد انجام دادم البته قصر زیبایی به دست آوردم در عوض مرزا رو بهش بخشیدم حالا چه کار باید بکنم مرزا کجاست ناگهان مرزا فریاد زد مرد جوان غمگین نباش من پیش تو هستم و هرگز ترکت نمیکنم تیرانداز پرسید اما زاهد چه میکنه مرزا جواب داد او مشغول عبادته من نمیتونم باهاش باشم تیرانداز خوشحال شد و به راه خودش ادامه داد و با عجله حرکت میکرد و ناراحت به نظر میرسید چون میخواست هر چه زودتر برگرده پیش زن جوان خوشگلش او بدون توقف و بدون اینکه حساب روزها و شبها رو داشته باشه حرکت میکرد بالاخره به کنار دریا رسید تیرانداز فکر کرد اگه بخواد دریا رو دور بزنه باید حدود یک ماه تمام پیاده روی کنه در این موقع چشمش به یکی از کشتی‌های افتاد که کنار ساحل قرار داشت روی کشتی تعداد زیادی سرباز به نظر میرسید که قصد حرکت دارند تیرانداز به کشتی نزدیک شد و گفت من از جای دوری میام خواهش میکنم منو هم سوار کنین تا برم اون طرف ساحل پرمانده کشتی موافقت کرد و گفت سوار شو هر جا که مایل باشی تو رو میبریم تیرانداز سوار کشتی شد و به همراه سربازا حرکت کردند. سربازا مشغول غذا خوردن شدند و تیرانداز بهشون گفت: از غذای خودتون کمی به من بدی. سربازا در جوابش گفتند: با اون که اجازه دادیم سوار کشتی بشی، ولی تو جسارت رو به جایی رسوندی که تقاضای غذا میکنی، از این کار چه استفاده می میبریم؟ ما به تو غذا نمیدیم چون غذای ما کاملا معین و بندی شده است. تیرانداز گفت: گفتید غذای شما جیره‌بندی شده؟ ولی غذای من هرگز جیره بندی نمیشه. اگرم بخوام میتونم شما رو دعوت به غذا کنم. غذای من علاوه بر اینکه شما را سیر میکنه، مقداری هم زیاد میاد. سربازا خشمگین شدند و تیرانداز رو به باد فش و ناسزا گرفتند و گفتند تو آدمی لافن و دروغگویی هستی. بعدش هم رفتند پیش فرمانده کشتی و موضوع رو براش تعریف کردند. فرمانده تیرانداز رو خواست و ازش پرسید: واقعا میتونی همه افراد ما رو غذا بدی؟ تیراندوز گفت هرچی میگم ادعا نیست حقیقته خب اگه اینطوریه قول خودت رو انجام بده بعد ما باور میکنیم که تو آدم راستگویی هستی اما اگه دروغ گفته باشی یه سنگ بزرگ میبندی به گردنت و میندازیمت توی دریا تیرانداز گفت خیلی خب من بهتون نشون میدم که آدمی دروغگویی نیستم سربازا باید در دو ردیف روبرو هم قرار بگیرن تا یه فاصله بینشون باشه و بتونم سفره رو بینشون پهن کنم به دستور او سربازان در دو ردیف روبروی هم قرار گرفتند تیرانداز فریاد زد آهای مرزا به این سربازا هرقدر میتونی غذا بده در همون لحظه بین سربازا یه سفره زردی پوشیده از انواع و اقسام غذاها و نوشیدنیها و میوا گسترده شد جنگجویان با عجله هر چی میتونستند غذا خوردن و نوشیدنی نوشیدند حتی مقدار زیادی غذا باقی موند تیرانداز پرسید سیر شدین؟ جنگجویان گفتند بله خیلی غذا خوردیم کاملا سیر شدیم تیرانداز گفت آهای مورزا تمام این غذاهای زیادی رو بردار در یه لحظه سفره برچیده شد و بشخابها و ظرفها و کاسه‌ها از نظر ناپدید گشت سربازا دهنشون از تعجب باز مونده بود گفتند تا حالا با چنین موضوع عجیبی روبرو نشده بودیم بعد از تیرانداز خواستند که مورزا رو در اختیارشون بگذاره. گفتند اونو به ما بفروش. تیرنداز گفت من چنین کاری نمیکنم. مورزا قابل فروش نیست. خیلی ازش خواهش کردند و پیشنهادهای زیادی بهش دادند. اما مرد جوان زیر بار نرفت. جنگجویان گفتند اگه نمی‌خوای اونو به ما بفروشی پس باید چیزی که در اختیار داریم باهاش عوض کنی. ما به جاش یه چیز آور بهت میدیم. تیرانداز گفت چی به من میدید؟ چی ممکنه بیشتر از مورزا برای من ارزش و اهمیت داشته باشه اون برای من خیلی مفیده و در برابرش عجیب چیزهای دنیا بی ارزشه اون سربازا بلافاصله یک تفنگ طلایی که نوک اون خیلی زخیم بود حاضر کردند و به مرد جوان نشون دادن و گفتند ما این تفنگ رو بهت میدیم این تفنگ قدرت عجیبی داره اگه نوک زخیمشو به زمین بکوبی، بلافاصله افراد سوار نظام بیشماری ظاهر میشن که لباسهای رزم و جنگ به تن کرده‌اند. اون‌ها زره‌های باشکوه و, و شمشیرهای فولادی با خودشون دارند. اگه نوک باریکشو به زمین بزنی، تیراندازهای زیادی که اسلحه‌ای در دست گرفتن ظاهر میشند. مرزا وقتی این تفنگ رو در دست تیرانداز دید، گفت: "فورا عوض کن. جنگجویان مال تو خواهند بود. منم مال تو هستم." تیرانداز پذیرفت، مرزا را عوض کرد و تفنگ تلایی رو ازشون گرفت. موقعی که کشتی به ساحل رسید، جنگ جویان از کشتی پیاده شدند و حرکت کردند. تیرانداز هم به راه خودش ادامه داد. ولی در بین راه مرتب با خودش می گفت، حالا مرزای من کجاست؟ ولی مرزا اونجا بود و جواب نمیداد. تیرانداز یه روز و یه شب راه رفت و دوباره پرسید، دوست من مرزا کجایی؟ ولی باز هم جوابی نشنید تیرانداز راه خودش رو ادامه داد دو روز و دو شب دیگه هم گذشت دوباره دوستش رو صدا زد مرزا کجایی جواب بده اما مرزا اونجا نبود جواب نداد تیرانداز خیلی ناراحت شد و گفت منو گول زد من بد کاری کردم او رو با جنگجویان عوض کردم روز پنجم وقت غروب آفتاب تیرانداز به خودش گفت برای آخرین بار صداش میزنم بعد صدا زد مرزا جواب بده کجا هستی ناگهان مرزا گفت نراحت نباش من همینجا هستم مدتی دنبالت راه افتادم تیرانداز خیلی خوشحال شد روی زمین نشست و گفت بدون تو از گرسنگی میمیرم زود باش یکم غذا حاضر کن ناگهان سفره ی زردی با انواع غذاها در مقابلشون گسترده شد تیرانداز و مرزا با عجله به خوردنش مشغول شدند بعد بیا که حساب شب و روز رو داشته باشند. به راه خودشون ادامه دادند و بالاخره در یکی از نیمه های شب به سرزمین تارکین خان رسیدند. تیرنداز بلافاصله فاصله داخل چادرش شد و زنش رو بیدار کرد و گفت زود باش بلند شو من برگشتم. زنش خوشحال شد فره از جا بلند شد و چراغ را رو روشن کرد و پرسید حالت چطوره؟ بعد هر دو نفر اتفاقاتی که در این مدت رخ داده بود برای هم تعریف کردند. تیرندوز پرسید: خان حالش چطوره؟ بیماریش برطرف شده؟ زنش جواب داد: از روزی که تو حرکت کردی حال خان بهتر شده. سه بار اینجا اومده و از من خواسته زنش بشم. اما هر سه بار بهش جواب رد دادم و گفتم: "باید درباره ازدواج با تو کمی فکر بکنم. شوهرم رفته تا چیزی تهیه کنه تا تو رو معالجه کنه. نمیدونم زنده است یا مرده." با این ورد چطور میتونم با تو ازدواج کنم؟ ولی خان همش اصرار میکرد و میگفت شوهر تو مدتی مرده منم جواب میدادم اگه راست میگی جسدش رو به من نشون بده بعد حرفتو قبول میکنم وقتی خان جواب منو شنید دستور داد تا تمام وسائل و چیزهایی که در اختیار داشتم از من بگیرن بعد از اون چیزی جز همین چادر خالی برای من باقی نگذاشته تیرانداز وقتی این جریان رو شنید خیلی ناراحت شد و به زنش گفت به طرف قصر خان حرکت کنیم تا به خاطر بازی و پستی اونو به مجازات سختی برسونم تیرانداز با زن خودش به طرف قصرخان خان حرکت کرد و در همون حدود دستمالش رو تکون داد و گفت قصر ظاهر شو بلافاصله قصری نمایان شد که ارتفاعش به بالای عبرها می رسید این قصر به قدری جالب و زیبا بود که قصر خان در مقابلش زشت و بد شکل به نظر می اومد. تیرانداز به همراه زنش داخل قصر شد و به مرزا دستور داد و گفت مرزا فوراً برای ما غذا حاضر کن. موقعی که هر سه نفر غذا خوردن و سیر شدند، تیرانداز از قصر خارج شد و نوک نازک اسلحه را به خاک زد. بلافاصله سربازانی که اسلحه در دست داشتند ظاهر شدند و در برابر قصر صف کشیدند و منتظر فرمان او شدند. تیرانداز به همشون گفت تا موقعی که از خواب برنخواستم حق ندارید به کسی اجازه بدید داخل قصر بشه. صبح فردا وقتی خدمتگزاران خان این قصر شگفتنگیز و بزرگ رو دیدند، حاج و واج موندند و نمیدونستند چی بگند. با خودشون گفتند یعنی چی این قصر قشن کجا بود؟ آیا خداوند این قصر رو در یه شب برپا ساخته یا شیطان اونو درست کرده؟ با عجله رفتند و جریان رو به خان گفتند. خان به همراه اونا حرکت کرد و قصر رو دید و مبهوت شد مثل اینکه عقل خودش را از دست داده باشه پرسید موضوع چیه از موقعی که پا به این دنیا گذاشتم با چنین قصری روبرو نشدم حتی کسی هم از چنین قصری صحبت نکرده کی اونو ساخته کی اونجا زندگی میکنه فوراً برید و کسی که توی این قصر عجیب زندگی میکنه پیش من بیارید فرستادگان خان به راه افتادند و مقابل قصر رسیدند از دو نگهبان دلیر و خشن پرسیدند این قصر مال کیه؟ کی تو اون زندگی میکنه؟ شما کی هستین؟ از کجا میاید؟ فورا جواب بدین دو نگهبان با وضع خشنی از اونا پرسیدند شما کی هستین؟ چرا چون این سؤالی از ما میکنید؟ اونا گفتند ما فرستادگان تارکین خان هستیم او دستور داده هرچی شنیدیم و دیدیم بهش گزارش کنیم نگهبانون پرسیدند این خان کیه؟ ما تا حالا درباره‌اش چیزی نشنیدیم. احتیاجی هم به خانه شما نداریم. ما خانه مخصوصی داریم که الان توی قصر خوابیده. اگه جون خودتون رو دوست دارین فورا از اینجا برید. فرستادگان کاملا به وحشت افتادند و پیش تارکین خان برگشتند و هر چه شنیده بودند اطلاع دادند. تارکین خان اونا رو به ناسزا گرفت و گفت: من شما را نفرستادم تا با نگهبانا جر و بحث کنین. من به شما دستور دادم صاحب قصر رو بیارید پیش من. خان دستور داد این دو فرستاده را به شدت مجازات کنند سپس به دو نفر از سرداران غول پیکر خود دستور داد و گفت فوراً صاحب اون قصر را دستگیر کنید و پیش من بیارید غولهای خان به قصر نزدیک شدند و خواستند درهای قصر را باز کنند اما نگهبانان اونا را عقب روندند و گفتند شما کی هستید؟ اگه به جون خودتون علاقمندین فوراً از اینجا دور بشیم غول های خان جواب دادند ما نمی‌وریم با شما بحث کنیم ما اومدیم تا صاحب قصر رو دستگیر کنیم و پیش خان ببریم. قول‌ها سعی کردند داخل قصر بشن ولی نگهبانا اونا رو گرفتند و کتک مفصلی بهشون زدن گفتند ما احتیاج به خانه شما نداریم ما مایل نیستیم با هاش روبرو بشیم قول‌ها در حالی که میلنگیدند و مینالیدند پیش خان برگشتند و گفتند نگهبانان نذاشتند ما داخل قصر بشیم نمیتونستیم در برابرشون مقاومت کنیم مثل اونا قوی نبودیم تارکین خان فوراً مشاوران خودش رو خواست و موضوع رو باهاشون در میون گذاشت و پرسید: به من بگید چه کار باید بکنم؟ مسلماً این شخص دشمن نیرومندیه که به اینجا اومده. مشاورا جواب دادند: باید اعلان جنگ بدیم. تارکین خان دستور داد همه سربازاش رو آماده کنند و اونا رو به جنگ بفرستند. بعد اضافه کرد: فوراً تمام کسانی که میتونن سوار اسب بشن و جنگ کنن برای حمله به دشمن آماده بشن. فرماندهان لشکر همه رو جمع کردند و حرکت دادند. تارکین خان قصر تیرانداز رو به سیوسه هنگ در 33 ردیف احاطه کرد و فریاد زد: خارج شو تا موقعی که روزه بیا و با ما جنگ کن. تیرانداز صدا رو شنید، پنجره رو باز کرد و پرسید: شما کی هستید؟ اینجا چه کار می‌کنید؟ جنگجویان جواب دادند: ما قشون خان نیرومند هستیم. تیرانداز بهشون گفت: من نه دوست خان هستم نه دشمنش در این قصر زندگی راحتی دارم اگه خان میخواد با من بجنگه منم جنگ میکنم جواب منو کی میده؟ تارکین خان فریاد زد جنگ میکنیم تیرانداز از قصر خودش خارج شد و نوک زخیم تفنگ طلایی رو به زمین زد و در نتیجه اسب سواران زیادی ظاهر شدند همه ی اون آزره های باش و های خودشون رو به دست گرفتند و فریاد زدند به ما چه دستور میدی تیرانداز گفت برید و با جنگجویان خان بجنگید جنگجویان حرکت کردند و جنگ سختی شروع شد تیرانداز دوباره نوک نازک تفنگ طلایی رو به زمین زد و این بار سپاهیان زیادتری ظاهر شدند سلاح‌ها در دستشون بود تیر و های خودشون رو بلند کردند و پرسیدند به ما چه دستور میدی تیرانداز بهشون گفت برید و با قشون خان جنگ کنید. سربازها به کمک سوارها حرکت کردند و قشون تارکین خان رو به عقب نشینی وادار کردند. بعد دسته های تیرانداز با عجله اونا اونارو تعقیب کردند و همه رو کشتند. جنگ از صبح شروع شد و موقع اصر خاتمه پیدا کرد. اونها خواستند خان تارکین رو دستگیر کنند اما خان از اسب پیاده شد و به طرف قصر تیرانداز حرکت کرد و فریاد زد منو نجات بدید به من رحم کنید تیرانداز به سواران خودش گفت صبر کنید اونو نکشید زنده زنده پیش من بیارید من میخوام باهاش صحبت کنم جنگجویان پاها و دستهای تارکین رو بستند و او رو پیش تیرانداز بردند خان در برابر تیرانداز در حالی که میترسید قرار گرفت و تعظیم کرد ولی او رو نشناخت خان ازش تقاضا کرد که نسبت بهش رحم کنه و اونو نکشه تیرانداز خندید و گفت نترس من شما رو نمیکشم. شما میخواستید جنگ کنید منم جنگ کردم ولی حالا شما رو به خوردن غذا دعوت کنم مورزا به من غذا بده دوباره اون سفره زرد گسترده شد و غذا و نوشیدنی های بسیار لذیذی روی اون ظاهر گشت تیرانداز خان رو دعوت کرد و به او غذا و نوشیدنی داد و گفت شنیدم که در سرزمین شما تیرانداز جوانی زندگی می کرد اون الان کجاست خیلی میل دارم ببینمش خان جواب داد او اینجا نیست تیرانداز پرسید پس کجاست تارکین جواب داد فکر میکنم مرده تیرانداز گفت شنیدم زنده است خان جواب داد او به جایی رفت که اسمشو نمیدونم قرار بود زود برگرده ولی برنگشت برای همین فکر میکنم که مرده خوب شنوندگان عزیز کانال تلگرامی هزار افسان به نظر شما این داستان چطور پایان پیدا میکنه؟ بالاخره چه اتفاقی میافته؟ کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های ای صوتی نشانی کانال تلگرامی T نقط می مهران دوستی. نقتم م چ ر -ن م ی -ر ن dی نقط COم مهران دوستی. blogv.comپ کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستی.